این داستان تببال روزی روزگاری زیر گنبد آبی آسمون شبی از شبها تبال جوانی که از میان مزاره میگذشت به دریاچه رسید و سرشت کتان سفید کنار دریا شدید با خودش گفت چه کتان لطیفی؟ بعد یکی از اونها رو برداشت و در جیب خودش گذاشت و راه خونش رو در پیش گرفت اما وقتی به خونه رسید اون چرا یافت و در جیب گذاشته بود فراموش کرد و آماده خوابیدن شد ناگهان به نظرش اومد کسی اونو صدا میکنه. دقت کرد و شنید که کسی میگه تبال تبال بلند شو چون تاریک بود ابتدا چیزی ندید بعد متوجه شد نوری بالای تخت خوابش پرواز میکنه پرسید چه هستی که هستی صدا جواب داد لباسم را به من پس بده همون لباسی که از کنار دریاچه برداشتی تبال گفت خب اگه بگی کی هستی لباستو پس میدم صدا گفت من دختر یه پادشاه مقتدرم که در چنگ جادوگری گرفتار شدم او منو در کوهی زندانی کرده. هر روز مجبورم با خواهرانم به دریاچه بیام و شنا کنم. بدون لباسم نمیتونم پرواز کنم و به کوه شیشه ای برگردم. خواهرانم برگشتن و من تنها موندم. لباسم لباسمو پس بده در عوض من دعات میکنم. تپال گفت خیالت راحت باشه همین الان لباستو پس میدم. بعد رفت و رشته کتان را از جیبش درآورد و در تاریکی اونو به شاهزاده خانم داد. شاهزاده با عجله اونو برداشت تا بره که تبال اونو صدا کرد و گفت صبر کن، از دست من کاری برمیاد که برات انجام بدم. شاهزاده خانم جواب داد اگه دلت میخواد کمکم کنی باید تا قله کوه بالا بیای و منو از چنگ جادوگر پیر خلاص کنی. البته بالای کوه رفتن آسونه ولی رسیدن به قله اون چندان آسون نیست تپال گفت من هر کاری که اراده کنم میتونم انجام بدم دلم برای شماها میسوزه از هیچی هم نمیترسم ولی نمیدونم کوهی که میگی کجاست و از چه راهی میتونم بهش برسم شهزاد خانم جواب داد باید از جاده ای عبور کنی که از وسط جنگل میگذره از چند مسافرخونه سر راه هم باید بگذری دیگه نمیتونم بیشتر از این چیزی بگم بعد تبال صدای بال زدن شاهزاده رو شنید و متوجه شد که از اونجا رفته تبال که تصمیم گرفته بود به شاهزاده خانم کمک کنه وسط روز آماده حرکت شد تبلو روی شانش آویزون کرد و راه افتاد و بدون ترس و واهمه راهی جنگل شد بعد از مدتی راهپیمایی در جنگل حسلش سر رفت چون در راه به هیچ موجود زندهی بر نخورده بود. پیش خودش گفت باید موجوداتی رو که از روی تنبلی به خواب رفتن از خواب بیدار کنم. با این فکر تبل خودش رو آماده کرد و بر اون کوبید. صدای نخراشیده ای از اون برخواست. طوری که پرندگان هم همه کنون از روی شاخه های درختان پریدن و گریختن کمی بعد قولی که در میان علف ها خوابیده بود از خواب بیدار شد و جلوی تبال استاد او که قدی به بلندی یه درخت داشت فریاد زد مردک چرا با صدای وحشتناک تبل مردم و از خواب ناز بیدار میکنی؟ منظورت از این کار چیه؟ تبال جواب داد من طب رو به صدا درآوردم تا تو رو از خواب بیدار کنم. همونطور که هزاران نفر پیش از من این کار رو کردن. من راه و بلد نیستم و باید مسیرم رو پیدا کنم. قول با عصبانیت پرسید حالا در این جنگل که از آن چی میخوای؟ تبل جواب داد دلم میخواد جنگل رو از حیوله های مثل تو پاک کنم. قول فریاد زد و گفت من میتونم آدمایی مثل تو رو مثل مورچه زیر پام له کنم. تبال بهش پرید و گفت: "اینقدر برای من قُمپز در نکن. تو تا بخوای برای گرفتن یه آدم خم بشی، اون ترافرز از دستت فرار میکنه و در جای پنهان میشه." همراهانی که با من قدم به این بیشه گذاشتند میتونن وقتی دراز کشیدی و در خوابی با چکش‌های آهنی خودشون چنان بر فرق سرت بکوبند که مغزت متلاشی بشه رجاز خونیای تبال تب قول و از تک و تا انداخت با خودش فکر کرد اگه با این آدمای مکار کنار بیام به نفمه اگه این کارو نکنم بی تردید بلایی سرم میارن من حریف خرس‌ها و های درنده میشم ولی در مقابل این کرمای زمینی نمیتونم از خودم دفاع کنم به همین دلیل رو به تبال کرد و گفت گوش کن آدم تعهد میکنم که به تو همراهات کاری نداشته باشم و شما در اینجا در امان باشین حالا به من بگو چی میخوای و چه آرزویی داری من چطور میتونم آرزوتو برآورده کنم تبال گفت تو پاهای درازی داری و تندتر از من میدوی برای اینکه حسن نیت خودتو ثابت کنی منو به بالای کوه شیشهای ببر منم همراهامو بدون هیچ درگیری از جنگل بیرون میبرم قول گفت کرم زمینی بیا اینجا رو کولم بشین تو رو هر جا که دلت بخواد میبرم قول شروع کرد به حرکت کردن تبال هم شروع کرد به نواختن وقتی این بار صدای دلنشینی از اون در آورد، حتی قول هم از صدای تبل خوشش اومد و اونو نشانه صلح و صفا بین خودش و آدم‌ها دونست. بعد از مدتی قول دیگه ای ظاهر شد. تبال رو از قول اولی تحویل گرفت و داخل جا دکمه نیمتنش گذاشت. تبال برای اینکه در جاش قرص و محکم بشینه، به دکمه نیمتنه قول که به اندازه یه بشقاب بود چنگ زد و اونو محکم گرفت. اون خوشنود به نظر می آمد. بعد از مدتی سر سرکله قول سومی پیدا شد. اون تبال را از قول دومی گرفت و روی لبه کلاهش گذاشت. تبال از اونجا سرشاخه های بلند درختان رو میتونست ببینه. مدتی که گذشت ناگهان چشم تبال از دور به کوهی افتاد. فکر کرد آه خودشه کوه شیشهیه. سرانجام با اون گامهای بلند قول چند لحظه بعد به پای کوه رسیدن. قول تبال رو از روی لبه کلاهش بلند کرد و بر زمین گذاشت. تبال دلش میخواست قول اونو به قله کوه برسونه نه اینکه در پای کوه پیادش کنه. اما قول با این کار مخالفت کرد و در حالی که چیزی زیر لب گفت به طرف جنگل برگشت. بیچاره تببال پای کوه ایستاده بود. ارتفاع کوه به حدی زیاد به نظر می آمد که انگار سه تا کوه روی هم گذاشتن. دامنه کوه مثل آینه صاف و لغزنده بود. مثل اینکه قله اون با هیچ وسیله قابل تسخیر نبود. تب بال شروع کرد به بالا رفتن ولی هنوز یکی دو قدم بالا نرفته بود که سر خورد و به جای اولش برگشت. با خودش فکر کرد چه خوب بود پرنده می شدم ولی این فقطی یه آرزو بود و از بال و پر خبری نبود. همینطور که با این فکر و خیالات سرگرم بود و نمی دونست چه راهی رو در پیش بگیره چشمش به دو نفر افتاد که با هم دعوا کردن. نزد اونا رفت و متوجه شد دوای اونها بر سر تصاحب یک زین اسب روی زمین افتاده. تبل بر سرشون داد زد و گفت: چقد شما دوتا آدمای خنگی هستین. وقتی اسب ندارین برای تصاحب این زین دارین دعوا میکنین که چی بشه؟ یکی از اونا گفت: این زین بسیار با ارزشه. هر کسی روی اون بشینه و آرزو کنه به جایی بره حتی تا انتهای دنیا هم که باشه زین اونو میبره. زین مال هر دوی ماست و حالا نوبت منه که سوار اون بشم ولی شریکم اجازه نمیده. تبال گفت حالا دعوای شما رو فیصله میدم. از اینجا کمی فاصله بگیرین و یه تکه چوب سفید در زمین فرو کنین. بعد هر دو به جای اول برگردین. و از همین نقطه به طرف اون چوب سفید بدوید. هرکس که زودتر به چوب رسید صاحب زین میشه. اون اون دوتا پیشنهاد رو پذیرفتن و شروع کردن بدویدن. اما هنوز چند قدمی نرفته بودند که تبال تب روی زین نشست و از اون خواست که اونو به قله کوه برسونه. هنوز چشم به هم نزده بود که متوجه شد روی قله است. دشت وسیع اون طرف قله بود که اماراتی سنگی و قدیمی در وسط اون دیده میشد. جلو امارت حوزچه بزرگ ماهی و پشت اون جنگلی تاریک و انبوه بود. در اون چشمنداز نشانی از آدم و هیچ جمبنده دیگه ای نبود. غیر از نسیم که برگ درختان رو تکو می هیچ صدایی به گوش نمیرسید. سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. تکه ابری آروم در سینه آسمون حرکت میکرد. به طرف امارت سنگی رفت و در زد، کسی جواب نداد. دوباره در زد، اما باز هم خبری نشد. بار سوم که در زد پیرزنی سیاه سوخته با چشمانی قرمز کنار در ظاهر شد. او که عینکی روی بینی اقابیش گذاشته بود با دقت جوون رو برانداز کرد و پرسید اینجا چی کار داری؟ جوون جواب داد اجازه میخوام شب رو در اینجا اقامت کنم اگه قضاییم به هم بدی ممنون میشم پیر زن گفت به شرطی اجازه میدم که سه تا کار برام انجام بدی تپال جواب داد من از زیر هیچ کاری حتی اگر دشوار هم باشه شونه خالی نمی کنم. پیرزن وقتی دید که جوان شرط ها رو پذیرفته بهش اجازه ورود داد. بعد هم شامی براش فراهم کرد و جای خوبی برای خوابیدن بهش داد. صبح روز بعد که تبال بیدار شد سپانش آماده بود. بعد از خوردن صبحانه به پیرزن گفت که آماده است هر کاری که بخواد انجام بده. پیرزن انگشتانه ای از انگشت کج و ماوجش بیرون آورد و گفت اولین وظیفت اینه که با این انگشتانه آب اون حوضچه ماهی رو خالی کنی ماهی‌ها رو هم باید بر حسب نوع و اندازه کنار هم بچینی تبال گفت این کار عجیب و غریبیه که به من محول میکنی اینو گفت و سرش انداخت پایین و دست به کار شد اون تمام صبح رو با جدیت کار کرد. ظهر که شد، تبال با خودش فکر کرد. کاری که تا حال انجام دادم بیفایده بوده. چه به کار ادامه بدم، چه ندم، فرقی نمیکنه. با این فکر دست از کار کشید. گوشه نشست و زانوی قم به بغل گرفت. در این لحظه دختر جوانی از امارت سنگی خارج شد و به طرفش اومد. دختر زنبیلی در دست داشت. که غذای تببال در اون بود و وقتی نزدیک شد پرسید چرا اینقدر غمگین و ناراحتی مگه چه اتفاقی افتاده تببال سرش رو بلند کرد و دید دختر بسیار زیبایی نزد اون اومده با حیجان گفت در اولین کاری که به من محول کرده موندم چه برسه به کارهای دیگه من در جستجوی دختر پادشاه به اینجا اومدم اما چون تیرم به سنگ خورده و دختر پادشاه رو پیدا نکردم ممکنه به زودی برگردم دختر جوان گفت نه این کار نکن، نکن همینجا بمون من بهت کمک میکنم مشکل تو حل کنی حالا خسته ای کمی بخواب و استراحت کن وقتی بیدار شدی کاری که به تو واگذار شده بود تموم شده تپال از خدا خواسته چشماشو بست و به خواب رفت دختر جوون هم انگشتر آرزوها رو در آورد و گفت آبها تخلیه ماهیها جابجا جا. لحظه طول نکشید که آبها مانند مهی سفید از حسچه برخواستند و در هوا شناور شدند و به عبرهای بالای کوه پیوستند در همان حال ماهیها یکی پس از دیگری پریدند و بر حسب انواع و اندازه در خزانه کنار حوضچه کنار هم قرار گرفتند وقتی تبال بیدار شد و دید که کاری به اون سنگینی با چه سرعتی به سرانجام رسیده حیرت کرد و گفت البته کار به طور کامل هم انجام نشده یکی از ماهی‌ها دورتر از جایی که باید باشه تک افتاده دختر گفت، پیرزن امشب برای سرکشی میاد تا ببینه کارها همانطور که او خواسته انجام گرفته یا نه. بعد از تو میپرسه چرا اون یکی از بقیه جداست؟ وقتی این سؤال رو از تو کرد، اون ماهی رو بردار و به طرف صورتش پرت کن و بگو جادوگر عجوزه، این ماهی به خاطر تو تک افتاده. شب که شد پیرزن آمد. وقتی همان سوالی رو که دختر گفته بود بر زبان آورد تبال ماهی رو به صورتش پرت کرد و همون کلمات رو بر زبان آورد. پیرزن بی حرکت ایستاد و انگار متوجه نشد چه اتفاقی رخ داده. فقط با اون نگاه شرربارش خیره به تبال تب نگاه میکرد. صبح روز بعد پیرزن گفت: کاری که دیروز به واگذار گذار کردم کار ساده بود. امروز باید کار مشکلتری برام انجام بدی میخوام تمام درخت های جنگل پشت این امارت رو قطع کنی و شاخه ها و تنه های اونها رو به شکل هیزم ببری و هیزم ها رو هم انبار کنی از حالا شروع میکنی شب که شد باید این کار تموم شده باشه پیرزن یک تبر، یک ساتور و یک گوه به او داد ولی تبر از جنس سرب بود، و ساتور و گوه هم حلبی بودند برای همین وقتی تبال کارش رو شروع کرد تبر در چوب گیر کرد و ساتور و گوه هم با همان زربه های اولیه از کار افتادند در واقع او برای قطع کردن درختها ابزاری در اختیار نداشت تبال نمیدانست این بار چه کند در این موقع خدمتکار دوباره آمد و ضمن آوردن غذا او را دلداری داد تو دیگر بخواب خواب و کمی استراحت کن. وقتی بیدار شدی کارها درست شده. وقتی او به خواب رفت دختر انگشتر براورنده آرزو رو درآورد و در یک آن و با یک ضربه تمامی درخت جنگل پشت امارت از پای افتادند تنه ها و شاخه های آنها جدا شدند و روی هم قرار گرفتند. انگار قولی نامرئی چنین وظیفه بزرگی را به انجام رسانده بود. وقتی تبال بیدار شد، دختر جوان به او گفت تمام درخت های جنگل بریده و انبار شده، غیر از یک بوته. وقتی پیرزن برای سرکشی بیاد میپرسه که چرا اون بوته جا مونده؟ تو باید با اون بوته زربهی بهش بزنی و بگی جادوگر عجوزه، این به خاطر توست، پیرزن آمد و دید همه کارها به خوبی انجام گرفته و گفت کار آسانی بهت محول کردم ولی چرا اون یکی بوته جا مونده؟ تبال با اون بوته زربهی بهش زد و گفت به خاطر تو جادوگر پیرزن انگار که ضربه را حس نکرده باشه با پوزخن گفت فردا همه این هیزمها رو میبری در یک جا جمع میکنی و آتیش میزنی تبال روز بعد رفت تا سومین دستور جادوگر رو اجرا کنه. اما چطور ممکن بود که یه نفر دست تنها بتونه دیزمهای ای این همه درخت جنگلی رو در یک جا روی هم بچینه. تبال دست به کار شد ولی انگار کار به جای پیشرفت پس رفت دختر جوان اونو فراموش نکرده بود. بار دیگه به سراغش اومد و غذای نیم آورد. بعد از خوردن غذا دخترک به جوان گفت که استراحت کنه. تبال که بیدار شد دید هیزمها در یک جا جمع شده و در حال سوختن. آتش افروخته شده به حدی شدت داشت که انگار زبانه های اون به ابرهای آسمون میرسید. دختر جوان رو کرد به تبال و گفت گوش کن. اگر پیرزن بیاد دستورای گوناگونه بهت میده. اگر کارها رو با جسارت طبق میل اون انجام بدی نمیتونه صدمه ای بهت بزنه اما اگه کمترین نشونه ای از ترس و واهمه در تو ببینه تو رو در بین شراره های آتیش میندازه. از طرف دیگه اگه همه دستوراش رو اجرا کنی دستاخر میتونی با دستهاد اونو بلند کنی و به میان آتش بندازی وقتی دختر جوان رفت سر سرکله پیرزن جادوگر پیدا شد پیرزن با صدای بلند گفت من خیلی سردم شده یه لطفی در حقم بکن اون کنده ای رو که در بین آتیشه و به سختی آتیش میگیره برام بیار و آتیش درست کن تا حسابی گرم بشم اگه این کارو انجام بدی آزادی که هر جا دلت میخواد بری حالا جسارت به خرج بده و کاری که بهت گفتم و انجام بده تبال لحظه درنگ نکرد، به میان شاله های آتیش پرید و کنده مورد نظر پیرزن را رو بیرون کشید. جالب اینجاست که آتیش صدمهی به تبال نزد، حتی یک موی او هم نسوخت. هنوز کنده رو بیرون نکشیده بود و روی زمین نزاشته بود که دید همون دختر مقابلش ایستاده. از لباسهای فاخر و ابریشمی او که با طلا ملیل کاری شده بود، معلوم بود که دختر یک پادشاهه. جادوگر پیر کینه توزانه خندهی کرد و گفت فکر میکنی میتونی شاهزاد خانم رو تصاحب کنی؟ این آرزو رو با خودت به گور میبری. بعد جلو رفت تا شاهزاد خانم رو بردار و با خودش ببره که تبال تب پیش دستی کرد و قدم جلو گذاشت. جادوگر رو با دو دستش گرفت و اون در بین شعله‌های های آتیش پرت کرد. با این کار نفس راحتی کشید چون دیگه از شرش خلاص شده بود دختر پادشاه دقت کرد و دید تبال تب که اون رو از شر جادوگر نجات داده جوانی جذابه به او رو کرد و گفت تو برای نجات من خودتو خیلی به زحمت انداختی اگر قول بدی به من وفادار باشی مایلم همسرت بشم من ثروت و ملک فراوانی دارم که جادوگر اونها رو تصاحب کرده. شاستاد خانم اونو به درون امارت برد و صندوقچه ها و جعبه پر از جواهر رو بهش نشون داد. اونها از طلا و نقره چشم پوشیدند و فقط چند جواهر گرانبها ها برداشتن و آماده شدن تا کوه شیشه ای رو ترک کنن. بعد تبال به شاستاد خانم گفت بیا با هم روی این زینه اسب بشینیم و مثل دو تا پرنده پرواز کنیم. شاهزاده خانم گفت: کافیه انگشتر براورنده آرزو رو در انگشتم بچرخونم تا بتونیم هر جا که میخوایم بریم. تبال با خوشحالی گفت: حالا که اینطوره بیا از انگشتر بخوایم ما رو به دروازه ورودی شهر زادگاه من ببره. در یک چشم به هم زدن، اون دو وارد شهر زادگاه تبال شدن. تبال گفت، در این مزرعه منتظرم باش. من پیش پدر و مادرم میرم تا اتفاقاتی رو که تا حالا اتفاق افتاده براشون شرح بدم. بعدم زود بر میگردم. دختر پادشاه گوش زد کرد. بزار یادآوری کنم که وقتی والدین خودتو دیدی فقط گونه چپ اونها رو ببوس. در غیر این صورت منو برای همیشه فراموش میکنی و من در این مزرعه تنها میمونم. تبال گفت چطور ممکنه که تو رو فراموش کنم؟ قول میدم زود برگردم. وقتی تبال وارد خونه شد کسی اونو نشناخت. در واقع روزی رو که اون تصور میکرد در کوه شیشه گرفتار شده سه سال بود. وقتی که اونو شناختن پدر و مادرش به هیجان اومدن و اونو در آغوش گرفتن و غرق بوسش کردن طبلم طب زوق زده شد و خوشدارهای شاهزاده خانم و فراموش کرد و هر دو گونه اونها رو بوسید به محض اینکه های راست پدر و مادرش رو بوسید عشق و محبت شاهزاده خانم هم از دلش رفت تبال از جیبش مشتی جواهر گرانبها در آورد رو و روی میز گذاشت والدینش تعجب کردند که این ثروت را از کجا به دست آورده. با این حال از داشتن اون همه ثروت خوشحال شده بودن پدر تبال پیش از هر کاری با اون ثروت قصری ساخت که دور تا دورش جنگل و باغ و سبزه بود و چنان زیبا شده بود که انگار قرار بود شاهزاده‌ای در اون زندگی کنه. وقتی که کار قصر تموم شد مادر تبال گفت دختری رو برات نشون کردم و تا سه روز دیگه باید مراسم عروسی رو راه بندازیم. تبالم که مایل بود عروسیش به میل پدر و مادرش باشه، با پیشنهاد مادرش موافقت کرد. بیچاره شاهزاده خانم، زمانی دراز بیرون شهر، چشم به راه تپال موند. اما وقتی هوا تاریک شد، با خودش گفت: شک نیست که او گونه های راست والدینش رو بوسیده و منو فراموش کرده. قلبش سرشار از اندوه شد و آرزو کرد به ای در جنگل نزدیک بره و اونجا با تنهاییش سر کنه. او هر غروب به شهر می آمد و اطراف خونهی پدر تبال قدم میزد. چندین بار تبال رو دید ولی اون به کلی شاه خانم ما فراموش کرده بود. یکی از روزها از مردم درباره عروسی تبال چیزهایی شنید. مردم میگفتند که فردا روز عروسیه. شادزادۀ خانم با خودش گفت: من باید کاری کنم که همسرم منو دوباره به یادش بیاره. برای شرکت در نخستین شب مراسم نامزدی، پیراهن زیبایی برای خودش آرزو کرد. لباسی به درخشندگی خورشید وقتی لباس پیش روی او آماده شد، مثل پرتو خورشید می درخشید. با ورود او به مهمانی، زیبایی و لباس گرانبهاش توجه همه رو جلب کرد. ولی تببال اونو در میان انبوه مهمان ها نشناخت. شاهزاده نیز بهش نزدیک نشد. اون شب پس از مهمانی، شاهزاده خانم نزدیک پنجره اتاق تببال رفت و با اندوه این آواز رو سر داد. آه ای بال آیا شایسته است من را به دست فراموشی بسپاری آیا این من نبودم که از تو مراقبت کردم و در اون کارهای سخت به یارید شتافتم سرگردانی در قله کوه را به یاد داری تو مرا از شر جادوگر عجوزه نجات دادی و هماندم پیمان بستی که به من وفادار بمانی من هم همه ثروت و مکنت خودم رو بهت بخشیدم آیا سزاوار منو به دست فراموشی بسپاری؟ اما تبال به خواب عمیقی فرو رفته بود و کلمه ای از این آواز را نشنید. شاهزاده خانم در دومین شب نیز در مراسم جشن عروسی شرکت کرد و پس از پایان آن با لحن اندوهگین همان آواز رو خوند. این بار او اتاق را اشتباهی گرفته بود، و به همین دلیل صدای شکفش باز هم به گوش تبال نرسید. ولی با این حال چون خدمتکاران به ارباب جوان خود خبر دادند که شب گذشته صدای زیبای زن جوانی روشنیدند شنیدند که آواز میخوند حس کنجکاوی تبال برانگیخته شد و تصمیم گرفت که اون شب آواز اون رو بشنوه. وقتی مراسم سومین شب نامزدی به پایان رسید. تبال رفت کنار پنجره نشست و منتظر شد. انتظار او زیاد طولی نکشید و خیلی زود صدای آواز در فضا پیچید. تبال که با شنیدن این آواز همه خاطرات گذشته را به یاد فریاد زد چه اتفاقی باعث شده که من عشق واقعیم رو به کلی فراموش کردم ای وای یادم اومد از خوشحالی دیدار والدینم گونه راست اونها رو بوسیدم تقصیر من بود این قصور رو جبران میکنم. در حالی که شاهزاده خانم همچنان با لحنی محزون به خوندن آوازش ادامه میداد تبال از جا پرید و به طرف اون رفت و گفت: « محبوب عزیزم منو ببخش. شاهزده هم گفت که با دیدنش همهی غمها و ناراحتی های گذشته رو فراموش کرده. بعد تبال اونو نزد پدر و مادرش برد و گفت، این عروس واقعی شماست. بعد برای اونها شرح داد که شاهزاده خانم در دردگیری‌ها و ها چقدر بهش کمک کرده بود. تبال علت فراموش کردن ماجرا رو هم براشون توضیح داد. پدر و مادر طبال شاهزاده خانم رو به عنوان عروس خودشون پذیرفتند و با دادن لباس زیبای عروسی به اون از اون اس کردند و رضایتش رو جلب کردند طبال و شاهزاده خانم تا آخر عمر با خوشی و شادی با هم زندگی کردند